مصنوی معنوی مولوی برنامه یک سد سی ما و معنی ماشا الله یعنی خاست خاست او و رضا رضای اوست رضای او, او جوید و از خشم دیگران و رد دیگران دلتنگ مباشید آنکانه اگرچه لفظ مازی است لیکن در فعل خدا مازی و مستقبل نباشد که لیسه عند الله वला مساء قول بنده عایشه شو الله کان بهره آن نبود که تنبل کن در بلکه تحریز است بر اخلاص و جد که در آن خدمت فزون شو مستعد گر بگویند آنچه چه می خواهی توراد کار کار توست بر حسب مراد آنگهان تنبل بالکنی جایز بود کان چه خواهی وان چه گویی آن شود چون بگویند عیش شا الله و کان حکم حکم اوست مطلق جاودان پس چرا مرد مرده اندر ورد او بر نگردی بندگانه گرد او؟ گر بگویند آنچه میخواهد وزیر خواست آن اوست اندر دار و گیر. گرد او گردان شوی صدمرده زود تا بریزد بر سرت احسان و جود یا گریزی از وزیر و قصر او این نباشد جستجوی نصر او باشگونه زینسخن کاهل شدی منعکس ادراک و خاطر آمدی. امر امر آن فلان خاجه است هین چیست یعنی با جزو کمتر نشین. گرد خاجه گرد چون امر آن اوست. کو کشد دشمن رهاند جان دوست. هرچه او خواهد همان یا بی یقین، یا و کمرو خدمت او برگزین. نی چو حاکم اوست گرد او مگرد، تا شوی نام سیاه و روی زرد. حق بود تعویل کان گرمت کند، پر امید و چست و با شرمت کند ورکند سستد حقیقت این بدان هست تبدیل و نتعویل است آن این برای گرم کردن آمده است تا بگیرد ناومیدان را دو دست. معنی قرآن ز قرآن پرس و بس وز کسی کاتش زدست اندر هواس، پیش قرآن گشت قربانی و پست تا که عین روح او قرآن شده است روغن کوشد فدای گل کل خواه روغن بوی کن خواهی تو گل و همچنین قد جف یعنی القلم و یعنی جف القلم و لا یستویت تاعت و المعصیت و ولا و لا يستوی الامانتو و جف القلم ال ان لا يستوی شکرو والکفرانو جف القلمو ان الله لا يزیعو اجر المحسنین همچنین تعویل قد جف القلم بهر تحریز است بر شغل اهم پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تاثیر و جزا. کج روی جف القلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. ظلم آری مدبری جف القلم، عادل آری برخوری جف القلم، چون بدزدد دست شد جف القلم خورد باده مست شد جف القلم تو روا داری روا باشد که حق همچون معذول آید از حکم سبق که ز دست من برون رفته است کار پیش من چندین میا چندین مزار بلکه معنی آن بود جف القلم نیست یکسان پیش من ادل و ستم فرق بنهادم میان خیر و شر فرق بن هادم ز هم از بتر ذرهای گر در تو افزونی ادب باشد از یارت بداند فضل رب قدر آن ذره را افزون دهد ذره چون کوهی قدم بیرون نهاد پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلم جو آنکه می لرزد ز بیم رد او وان که می زند در جد او فرق نبود هر دو یک باشد برش شاه نبود خاک تیره بر سرش زره گر جهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود پیش این شاهان هماره جان کنی خبر ایشان زغد رو روشنی گفت غمازه که بد گوید تو را آرد خدمتت را سالها پیش شاهی که سمی است و بسیر گفت غممازان نباشد جایگیر جمله از او آیست شوند سوی ما آیند و افزایند پند پس جفا گویند شهرا پیش ما که برو جفف القلم کم کن وفا معنی جفل قلم کی آن بود که جفا با وفا یکسان بود بل جفا را هم جفا جفل قلم وان وفا را هم وفا جفل قلم ااف باشد لیک کو فر امید که بود بنده ز تقوا سپید دزد را گر و باشد جان برد، کی وزیر و خازن مخزن شود، ای امین و دین ربانی بیا، که از امانت راست هر تاج و لوا، پور سلطان گر برو خاین شود، آن سرش از تن بدان باین شود، ور غلام هندوی آرد وفا، دولت او را میزند تال بقا. چه غلام، ار بردر سگ با وفاست، در دل سالار او را صد رزاست. زین چو سگ را بوسه بر پوزش دهد، گر بود شیر چه پیروزش کند، جز مگر دزدی که خدمت ها کند، صدق او بیخ جفا را برکند. چون فزایل رهزنی کو راست باخت، زن که ده مرده به سوی توبه تاخت. وان چونان که ساهران فرعون را روسیه کردند از صبر و وفا، دست و پا دادند در جرم قواد، آن به صد ساله عبادت کی شود تو که پنجه سال خدمت کردهای کی چنین صدقی به دست آوردهای حکایت آن درویش که در هری غلامان آراسته عمید خراسان را دید و بر اسبان تازی و قباهای زربفت و کلاهای مغرق و غیر آن، پرسید که اینها کدام امیرانند و چه شاهانند، گفتند او را که اینها امیران نیستند، اینها غلامان عمید خراسانند روی به آسمان کرد که ای خدا غلام پروردن از عمید بیاموز آنجا مستوفی را عمید گویند آن یکی گستاخ رو اندرهری چون بدیدی او غلام مهتری جامعه اطلس کمر زرین روان روی کردی سوی قبله آسمان که خدا زین خاجه صاحب منن چون نیاموزی تو بنده داشتن بنده پروردن بیاموز ای خدا زین رئیس و اختیار شهر ما بود محتاج و برهنه و بینوا در زمستان لرز لرزان از هوا انبساطه کرد آن از خودبری بری بنمود و از لم اعتمادش بر هزاران موهبت که ندیم حق شد اهل معرفت گر ندیم شاه گستاخی کند تو مکن آن که نداری آن سند حق میان داد و میان به از کمر گر کس تاج دهد او داد سر تا یکی روزی که شاه آن خاجه را متهم کرد و ببستش دست و پا. آن غلامان را شکنجه می نمود که دفین خاجه بنمایید زود. سر او با من بگویید ای خسان ورنه از شما حلق و لسان، مدت یک ماهشان تعذیب کرد. روز و شب اشکنجه و افشار و درد. پاره پاره کردشان و یک غلام راز خاجه وانه گفت از احتمام. گفتشان در خواب حاطف کیکیا، بنده بودن هم بیا بیا. ای دریده دا پوستین یوسفان، گر به گرگت، آن از خیش دان. زانکه کمی می بافی، هم ساله به پوش، کاری، ساله به فعل توست این غصه های دم بدم این بود معنی قط جفل قلم که نگردد سنت ما از رشد نیک را نیکی بود بد راست بد کار کن سلیمان که زنده است تا تو دیوی تیغ او برنده است. چون فرشته گشت از تیغ ایمی نیست. از سلیمان هیچ او را خوف نیست. حکم او بر دیو باشد، نه ملک. رنج در خاک است، نه فوق فلک ترک کن این جبر را که است، تا بدانی سر سر جبر چیست ترک کن این جبر جمع منبلان تا خبر یابی از آن جبر چوجان که معشوقی کنو کن و کن عاشقی. ای گمان برده که خوب و فائقی ای که در معنی ز شب خامشتری گفت خود را چند جویی مشتری سر بجنبانند پیشت بحر تو رفت در سودای ایشان دهر تو تو مرا گویی حسد اندر مپیچ چه حسد آرد کسی از فوت هیچ هست تعلیم خسان ای چشم شوخ همچون نقش خرد کردن بر کلوخ خیش را تعلیم کن اشق و نظر کن بود چون نقش فی جرم الهجر نفس تو با توست شاگرد وفا غیر فانی شد کجا جویی کجا تا کنی مر غیر را حبر و سنی خیش را بدخو و خالی می کنی متصل چون شد دلت با آن عدن هین بگو مهراس از خالی شدن امر قل زین آمدش کیراستین کم نخواهد شد بگو دریاست این انستو یعنی که آبت را بلاغ هین تلف کم کن که لب خشک است باغ این سخن پایان ندارد ای پدر این سخن را ترک کن پایان نگر غیرتم ناید که پیشت بیستند بر تو می خندند و عاشق نیستند آشقانت در پس پردهی کرم، تو نعرز زنان بین دم دم، آشق آن آشقان غیب باش. آشقان پنج روزه کم تراش. که بخوردندت ز خود او جذبه، سالها زیشان ندیدی حبه چند هنگامه نهی بر راه عام گام خستی بر نیامد هیچ کام وقت صحت جمله یارند و حریف وقت درد و غم بجز حق کو علیف وقت درد چشم و دندان هیچ کس دست تو گیرد بجز فریاد رس پس همان درد و مرض را یاد دار چون ایاز از پوستین کن اعتبار. پوستین آن حالت درد تو است که گرفت است. آن آیاز آن را بده است. باز جواب گفتن آن کافر جبری آن سنی را که به اسلامش دعوت میکرد و به ترک اعتقاد جبرش دعوت می کرد. و دراز شدن مناظره از طرفین که ماده اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی که او را پروای آن نماند و ذالک فضل الله یعتیه من یشاؤ. کافر جبری جواب آغاز کرد که از آن حیران شدان منتیق مرد لیک، گر من آن جوابات و سوال جمله را گویم بمانم زین مقال زان مهمتر گفتنی‌ها هستمان که بدان فهم تو به یا بد نشان اندک گفتیم آن بحث ای اطل، زنده که پیدا بود قانون کل همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر گر فرو ماندی ز دفع خسم خیش مذهب ایشان برفتادی ز پیش چون برون شوشان نبودی در جواب پس رمیدندی از آن راه تباب چون که مقزی بود دوام آن روش میدهدشان از دلایل پرورش تا نگردد ملزم از اشکال خاسم تا بود محجوب از اقبال خسم تا که این هفتاد و دو ملت مدام در جهان ماند الا یوم القیام چون جهان ظلمت است و غیب این از برای سایه می باید زمین تا قیامت ماند ندین هفتاد و دو کم نیاید مبتدع را گفتگو عزت مخزن بود اندربها که بر او بسیار باشد قافل ها عزت مقصد بود ای ممتحن پیچ پیچ راه و اقبه و راهزن. عزت کعبه بود و نادیه رهزنی اعراب و طول بادیه. هر روش هر ره که آن محمود نیست، اقبه و مانعی و رهزنی است. این روش، خسم و حقود آن شده تا مقلد در دره حیران شده صدق هر دو زد بیند در روش هر فریق در ره خود خوشمنش گر جوابش نیست می بندد ستیز بر همان دم تا بروز راست خیز که مهان ما بدانند این جواب گرچه از ما شد نهان وجه سواب پوزبند وسوسه عشق است و بس کی وسواس را بسته است کس عاشق شو شاهد خوبه به جو سید مرغابی همی کن جو به جو کی بریزان آب کان آبت برد کی کنی زان فهم فهمت را خورد غیر این معقول ها معقول یا در عشق با فر و بها غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماست که بدین عقل آوری ارزاق را، زاندگر مفرش کنی اتباق را. چون ببازی عقل در عشق سمد، عشرو امثالت دهد یا هفتصد، آن زنان چون عقلها باختند بر رواق عشق یوسف تاختند، عقلشان، یک دم ستد ساقی عمر، سیر گشتند از خرد باقی عمر. اصل صد یوسف جمال زلجلال، ای کم از زن فدای آن جمال. اشق برد بس را ای جان و بس، کوز گفتگو شود فریاد رس حیرت آید ز عشق نطق را زهره نبود که کند او ماجرا که بترسد گر جواب وادهد گوهر از لنج او بیرون فتد لب ببندد سخت او از خیر و شر تا نباید کزدهان افتد گوهر همچنان که گفت آن یار رسول، چون نبی برخاندی بر ما فسول، آن رسول مجتبا وقت نسار، خواستی از ما حضور و صد وقار، آنچنان که بر سرت مرغی بود که از فواتش جان تو لرزان شود. پس نیاری هیچ جنبیدن زجا، تا نگیرد مرغ خوب تو هوا دم نیاری زد ببندی را تا نباید که بپرد آن هما ورکست شیرین بگوید یا ترش بر لبنگشتی نهی یعنی خموش حیرت آن مرغ است خاموشت کند برنا حدد سردیگو پر جوشد کند.